راجع گرد مشتغلی و هم ناغه رحمتی که یا آره حضر شد روایاتی که در کتب اصحاب ما اجمالا خلصا در این متاخلی مجموعه ای از روایات و غرف و جمعه بر متعرض شدن و حضر کردیم که اینها توافی هستن که در این کتاب کانال احادیث هر ممای بروشه دی رحمت علیه تقریبا سعی کردن دست بندی بکنن تا اینجا یک ای که خوندیم تایفه اول اونهایی که درش ایش لحظه داشت سقه داشت تایفه دوم احادیثی بود که حدیثم واحد تأخید و من بود از توی حدیثم که یکی از اسباب تعارض داشت تا اون یه خیلتون زیاد نبود طایفه حسابش نه طایفه سوم روایاتی بود که ارجاء به افراد ماهینی از روایات داده بودند امام یالا یا بتر به اون یه اون رو اد... به تعارضش 4 و 5 طایفه پنجم ارجاء به ادعی از کتب این تا اینجا حالا صحبت کردیم که انصافا دلالت اینها بر حوکیت روشن نیست من برای اینکه بحث روشن تر بشه و واضح تر بشه دو مرتبه مسائل حوکیت و نهره اشاره به اسطلاح آقره هرز می‌کنم. بعد وارد در روایات میشیم از کردیم مجموعه احوالی که در بین علمای ما هست و علمای اهل سنت فرمان میکنم بیشه گفت سه تا محور اساسی یعنی سر رعی اساسی حالا محوری خودش شما زیادتای خاص کنه شده محور اول کسانی که قائل به حجیت تحبودی هستند، اصطلاح ما از شون حجیت تحبودی والا در حجیت تحبودی این که پرستانی در یک قانونی دلیل، شریعتی دلیل، دینی خبر مثلا تحبودن حالا بخواه مفید و باشه نباشه اطمینام باشه نباشه خبر رو خود کرده باشه هفته زابطه زاویه حجیه تعبودی این است که باید دارای معیار باشه مثلش اینجوری وقتی میگه حجیه تعبودی یعنی مثلا شاره یا مثلا همون قانون دیگه هر خبری که واجد این خصوصیت باشه این رو بیاد جرده این اسطلاحاً حجیه تعبودی اینه به دنبال موسوع نیستی به دنبال اجوینا نیست. از کنه در این محور مثلا اهل سنت غالبا مران دارم چون قائل بودیه تعدادی خبر عدل هم خود مفید و باشه نباشه. مثلا از علمان شیعه مرموهای کوی استادمون قائلا به حجر خبر سهه البته ایشون میگن حجر خبر سهه او و شاره اون رو امضا کرده در هر حال برمیاده به شارعه لیکن به امزای سیره اقلایست پس هر خبری که راویش اعذ باشه برانبر مبنای اول و هر خبری که بر راویش سره باشه تعبدن حجته ما به دنبال وضوح و شواهد به اجمالا نمیخاد بگن این کلا کسانی که قائل به حجیت تعبودی هستند دو کسانی که قائل به و عقلایی هستند اونا دیگه دنبال یک ضابطه معین نیستن معتقدند که عقلا در بحث حجیه اینکه مثلا کلامی مجت بشه زوااحی دارن شواهدی دارن تجمیه شواهد و مجموعه قرارم رو که با هم جمع بکنن به این نتیجه میرسن که مثلا این خبر مجهه پس در بجهیت اووقالی مجموعی شواهدی است که مفید ووسوع و اطمینانه. یه میار واحدی نداره که نه و دنبال میاره یعنی اساسش بسوخ به اطمینانه اینو رو به اسطلاح هم ما از روشیم حجیت اوالایی البته حجیت اوالایی بیر مناسی اگر خبر اون شباین و قوائن درش موجود بود با عنوان یک دلیل لحظی حجت اخذ به عمومش میشه کرد اخذ به اطلاقش میشه کرد اگر محکوم منطق داشته باشه اخذ به محکومش میشه که اگر محکوم برش منعبه باشه و مساله دیگری که در مواسه الکار بخ اصلا به سیغه افعال باشه و اون جلدش احسوم شو به سیغه مزارق باشه به سیغه ماضی باشه تمام اون خصوصیات لفظی مراقبش اون بحثایی که در بحث اصول گذاشته مره ایروز رأی ثبان محور کسانی محور که کسان قائل به حجیت نیستن این کسانی که قائل به حجیت نیستن اصولا به دنبال خبر نگاه نمیدن که این خبر حالا شواهلش چیه به دنبال مضمونن به دنبال حبن کسانی که میگن خبر رو جمعین این معنی نیست که مثلا در فقه ما همه روایت طرح بکنیم مرادشون این اینه که ما با خبر با امان یک دلیل لغزی بر خورد نمی‌کنیم یه خبری در مساله دو تا خبر هست پنج تا خبر هست بعد مراجعه کتاور رو کنیم بعد مراجعه به راهنمایی می بعد مراجعه سنت میکنیم بعد مراجعه برخورد علما اسلام می کنیم یعنی ما مجموعه شواهد رو در نظر می گیریم کل اون مجموعه شواهد به اون وک و یا اطمینان پیدا می خوب خوب کردیم به خبر دیگه کاری نداریم وصول و اطمینان به اون به اصطلاح خب این سه مرحله که اکثر این سیغیر مرتضی الله از این قبیل البته مثلا شاید مثلا مرموم شیط مفید استاره ایشان از قبیل دوگمه شاید مثلا قومی ها از قبیل دوگمه این یک توضیحات سابقا از کردیم شواهد ما نشون نمیده که علمای ما تا قبل زمان علامه رسما دنبال حجیر تعبدی بودند. البته شیط چرا؟ شیط توسی اولین کسیست که این باب رو مطرح کرده اما خیلی احساس نمیکنه آدم که ایشون کاملا مثلا این جنبه ایستادن باز دنبال شواهد بوسیق و اطمینان هستن به استثناء شیخ و مختصری که دنبالیشون بودن که اونم واضح نیست اصحاب ما چه بغزادی ها چه قومی ها حالا اون دو محروف در فرن چهارم این اصحاب ما هیچ کدومشون مشاهیرشون قائل به خود جب نبودن در که اهل سنت خیلی قبل از این قاعد به حجیت بودن خیلی قبل از این حرفا مباحث به حجیت تعبودی و اهل سنت قاعد و بیشتر هم برو مسئله ادالت و آده بودن اینها البته قیلی های دیگری هم در حدیث دارن زوابطی دارن مثل حدیث حسن رو تعریف تعریفی کردن حدیث هی رو تعریف کردن و شواهدی که یعنی طبق قواعدی که دارن اثبات حجی خبر ممکنه صحیح باشه به داستان اما نشه قبولش کرد با واقعیت نمی‌سازه اون بحثی دیگه‌یه با قطع نظر از وصول به خلاف خبر با قطع نظر از علم به خلاف خبر بناشون به اینه که خبر واقع وجیت تعبدی داره پس در اینجا این سه مبنا همیشه در ذهنتون باشه یکی حجیت تعبدی است یکی وجیت عقلایی است و, و یکی هم عدم حجیت ذرافتش هم این طوریه یعنی مثلا اگر فرصویم گفتیم این خبر درست بر حجیت میکنه یا درست بر حجیت نمیکنه. این باید این نکات توش ملا... ملاحظه بشه که آیا حجیت تعبوری از این خبر در میاد یا حجیت اوهلایی در میاد یا عدم حجیت ممکن از عدم حجیت در میاد این نکات رو در ذهن داشته باشیم تا وارد بحث بشه اون روایاتی که در یک لحظه سقه آمد توضیح یه چند بار به استثنای یکیشون که راجبی اینوستان عبدالرحمنه مربوط به دکالت اوکلای اهل بید و قول وکیل با عنوان بودجه اون احتیاج به اصلا روچی به بحث خبر واحد نداشت اون روایات که جعبش روچن شد روایات دیگری که ارجاع داده شده به عده از که یکیش تویش لفظه سقه داره که اینوستان عبدالرحمن سبت رو بلیش دیگه در این روایات ارز شد که افراد معینی مثل زراره مثل حالس ابن مغیره مثل فرسو یونوس از افراد معینی اسم برده شده مثل محمد ابن مسلم اینها اسم برده شده خب حالا ببینیم از این روایات آیا حدود طبعا بیشترین بحث محمد از در جیت خبر یعنی اساساً محور اساسی بحث و روح بحث که جیت که من سابقه هم شران گردم. اگر هیچ کدوم از قراره نباشه هم با سید مرتضاست که حجیت نیست باید وصوب و حب پیدا بود. پس باید شواهد بیاریم که اقلا اگر وصوب به یک مطن خبر پیدا شد دو عمل می این اثبات می کنید باید شواهد بیاریم که در تعبود شرعی با یک معیار معینی این خبر حجت شد پس به لحاظ تسلسل اونی که اصل اولی خواهد همون عدم حجیه باید شواهد و اقامه بکنیم بر حجیه اقلاعی باید شواهد شرعی اقامه بکنیم بر حجیه تعبدی این راه بحث اینه ترتیب بحث اینه و بیشترین همت و هدف در این بحث عبارت از اون حجیه تعبدیه نمو خواهد میام حجیه محل محله کلامی چرا؟ اما بیشترین هدف اثبات حجیت تحبودی خبره که مثلا یک خبری که داره این محیار باشه این حجیت این که مطلب رو بشنشده داره برگردیم به این روایات آیا از این روایاتی که وارد شده در میاد حجیت تحبودی خب تا تفسیری که ما الان کردیم در نمیاد چون حجیت تحبودی قوامش به وجود میاره در این روایات مئیار نیامده شد میگه ادارت تحریصا فعلی که بها داره جالس کیه زرانه و مئیار چیه نداره اگر <تصفيق> رفتی کوفه ابان تحلیب حدیثنا هم فرده یه یعنی همین فعل نفس معلومه نداره در محمد النموسلم داره کان وجیه هم مرضی یعنی اندهو که اندهر امام باشه معلومی این مئیار هم کلی باشه مرضی اندهر امام است چه چیزی شبیه به خاطر باشه کار توضیح شد ولذا لضا انصافه به این روایت نمیشه تمب کرد به عنوان حوجیت تعبدی که بگم موجیت تبد نمیشم تمب کرد به عنوان حجیت اوعلی به عنوان حجیت خاطر اینکه در اجازه تجمیه شواهد نیست نمیگه هر به ذرا را قبول کنه اگر دیدی بقیه اصحاب باش مخالف نیستن. صاف یکه هم بسید الا اردت حدیث هست فعاله پس این با حجیت اغلایی با تجمیه شواهد هم نمی سازه. با نفی حجیت هم که مرحوم سید ماست اونم میز. چرا؟ چون در نفی حجیت به اصطلاح میخواد نظر به حکم بکنه اینجا نظر به کلام داره پس انصافا این روایات اگر بخوایم یک تحلیل دقیق بدیم تقریباً درای افراد معین یک چیزی شبیه وکالت وکالت نیست میدیم امتا بعضیش را وکی باشن. اما وکالت نیست ما این توضیح رو کدارا عرض کردیم بحث وجید خبر و, و دقیقتمون قوامش اینه یک چیزی که شهنش طریقیت صرفه چاره بیاد بکنه. این بحث وجید خبر ولی زا یک بحث کبرری با اول مطرح کردیم که این خیلی مهمه این باز روش خیلی فکر بکنید چونان چیزی که شأنش طبیعیت صرفه معنی و حجیتش چیه بازو ما هو شأن هو, شعنه هو صرفه. ولذا مثلاً از طریق ما شأن هو طبیعیات صرفه و نظام اصلا از مردم دارین داره شأنش نیست که تقدیم این یک مسئله که مرحوم استاد هم قالو به این مبنا این حالا بقیه مسائلی که جون گفتن میخوام تکرار بکنم مرحوم نایدی میفرمایید فرماید معنای حجیت تطمیم کشف کاشف ناقص و کاشف تام قرار داده مرحوم استاد آیخوی من رویش رو تقریبا میشه شه مثلا یک جوری مکتب نظر تقریبا رعی عمومیش همینه که فاعله به تطمیم کشف تو ما صحبت عرف کردیم که انصافن اثبات به تطمیم کشف پیلی مشکل نیمه حالا این بحث بشن و لذا یه بحث اینه که اولا معیار بحث ما محل بحث ما اونه که مامل شعنیه از طریقیت و صرفه این نقطه رو کنیم قطعه کنید اونه که طریق صرفه حالا یه بحثانیه کسان خود جریع اون بحث دیگه اونه که شعنش طریقیت صرفه هست این محل کلامه و اگر این باشه ما وقتی به این نقطه مثلا چند روید ما رو زراره و عبانه نترلیف معلوم نیست اینجا کلام زراره تریبیت سرخ داشته باشده چون امام به فیضه بن مختار نفعه اداره تحدیثم فعله که آلا جالس لذا احتمالا در اینجا از اون طرف که زراره وکیل امام نبوده بر اونو وکیل نیست وکیل من توضیحش دادم وکیل تریبیت سرخه نیست قول قاضی حجته چون قول قاضی طریقیت صرف نیست قول داور الان هم تو زمان ما هستی مسابقه ها. قول داور حجته این طریق صرف نیست چون قاضیه رفع خصومت میکنه کنه حجته اصطلاحا این زیادیه در طریقیت و اسم شما گوشیم موضوعیت استلاحا. مثلا قول وکی موضوعیت داره قول قاضی موضوعیت داره اون استاندار والی موضوعیت داره در این موارد هم چون موارد اشخاص مختلفی بود تو دهوش با در نظر گرفتن اینکه امام معصوم ارجاوین ها دادن در حقیقت یک نوع موضوعیت درش مطرحه نه اینکه امام میخوان اگر تو حدیث میخوایی برو به تو کوفه ببین کی فقیهه کی ملاسی راوی کی حدیثی ها چینده سه ورس عدله از او اگر اونا رو میفرمون میفرمون اون میشد طریقی اما وقتی میگه علیه که به ها در شخص معین میکنه استلاحا ما اسمش میزیری موضوعی هم. وقتی موضوعیت آمد این موارد یک چیزی شبیه وکالت میشه اگر موضوعیت شد کلن از بحث حجید خبرواهد خارجه مثلا کلن به این روایت نمیشه اثبات حجید تعبدی کرد نمیشه اثبات حجید اغلایی کرد این روایت شعنشون شانه به اصطلاح مسئله موضوعیت یعنی این افراد موضوعیت دارن چون این افراد موضوعیت دارن لذا امام ارجاع به اونها داده لذا نمیتونید ما با این و از معامله یه حجیت بکنم و نه نفی حجیت به این توضیح داده شده، این لاجب این طایفه دیگر داد طبعا نکته دیگر هم که واضحه که اون رواید قابل عمل نید چون به افراد معینی ارجال دادن و چون ما میدونیم حتی رواید زراد به ما از طرق مختلف رسیده به درد ما هم هم به درد اصول هم نمیخوره به اصطلاح ما عرض کردیم هر جا مطلبی موردی بود این مال فقیل هر جا کلی بود مال اصولی این در زندتون باشدی این به درد موردیه یعنی مورد زراره و عبانه تحلیبی به درد ما نمطاره. این به درد زمانهای متعدد و مکانهای متعدد نمید اینم راجع به این قسمت من قسمت بعدی مجموعه روایاتی که ارجام به کتب معین داده که دیروز خوندیم این روایات، به حسب شماره اینجا 26 و 27 اینها راجع به یونوسه بعضیش راجع به فضل ابن شازانه بعضیه هاش راجع به کتاب به اصلاح صلیم ابن قیسه اینکه ایش هم راجع به کتاب حلویس و آخریش هم راجع به کتاب به اصطلاح احمد ابن عبدالله ابن خانبه این 6 نفر هستند که حیمه علیه السلام ترجاعه به این کتاب ها دادند البته چون من ارز کردم در بحث باید دقیق باشیم مثلا اون که راجب به کتاب یونسه، این با مثال این دقت در بحثه ببینید امام چی فرموده از اون فرموده امام آیا خودجیت در میاد در؟ مثلا راجب به کتاب یونوس که حالا غیر از این سنده ها مختلف باید دارن مختلف یه متنش اینجوریه که امام نگاه کرد کتاب رو فرمود رحمه الله و یونوس رحمه الله یونوس رحمه الله این الله یونوس منار به اصطلاح ملازم است مسابق از واقعه کتاب صوت درک یعنی تعبیر رحم الله آدم خوبی است اما اینکه این کتاب تمام احادیثش معتبری پیش در میاد یه تعبیرش اینه یه ت. رواد از اون که سند صحیح داره اینه قال اعطاه الله کل حرفه نورا یوم القيامه اعطاه الله به کل حرفه نورم یا مقیامه از این هم حجیت داریم. یعنی هر حرفش که نوره یعنی این روایات معتبرش مورد عمل رو این متن دومه متن سوم اینه که هزه نگار کنمونه هاغا دینی و دین و آبائی و هول حق و کلو این قطعا حجیت این شده شده تا متن هاغا دینی و دین و آبائی و هول حق و کلو این قطعاً حجیته پس معلوم شد راجع به کتاب یونس سه تا تعبیره یک تعبیرش با حجیت خوره که طبعا حکمشون سندشون ضعیفه الا همون اعطا الله نورنده کل عز نورانی امم قیامه اینی که سنزش معتبره سگه در یه سنزش گیر پس یک بحث واها شد در اونجا در بقیه مثلا حضرت داره فتره همه علی تصنیف فضل دیدم و ذکر انه خار عقبت اهل خراسان به مکان الفض من قبطه می کنم با خب آره این معناش حجیت کتابیشانه یا معناش جلالت به قضاییشانه مثلا همونجا داره که کتاب تزلو که نشوندن حضرتین عبو محمد امامه از خیدیدن باید فرموندن فقال حالا صحیحان ینبقی انی یعمل به این حجیت چی این روایاتی که ارجاع به کتب شده توی یک روایت که مربوط به فضل تعبیر صحیح آمده توی یک روایت هم راجب به احمد ابن عبدالله اون خانه به اونم داره حالا صحیحون آل صحیحون فحمده و این دو تا روایت از امام عسکریز این درست در اون زمانه است که دیگه اهل سنت اصطلاح صحیح رو به کار می بردم این یک نقصه خارجی رو توضیح بردم مثلا فرسه بخاری که اول کتاب سعیش معروفه 256 وفاتشه امامت امام اسکری از 255 تا 260 لذا این بحث مطرح میشه اگر در کلام کلام دقت کردین شما از این بحث ثانوی یا حاشیه بود اگر در کلام امام معصوم ده صحیحو هم این همون اصطلاح صحیح است که بخاری و مسلم و دیگران داشته خالا صحیح هون ينبغي ان يؤمل به این کلمه صحیح رو در اصطلاحات این روایاتی که از در اینجا آمده در این دو مورد داریم هر دو از امام عسکری یکی راجع به کتاب فضل بن شازان یکی هم راجع به کتاب احمد بن عبدالله خانبه که از کنیم هر دو هم سند ضعیفند اینطور اراده صحیح باشن به لحاظ سندی هر دو مشکل دارن زبایت ابن خانه که مشکل بیشتر ایدار مسترش هم وزش ناجورتره تا این یکی حالا این که بماکان این هم مسترش کتاب کشید خیلی وضع درستی نداره این اجمالا راجع به این کتاب ها پنج پنجیش بله در رجال نجاشی داره که و سن نفر کتاب منصوب در درباره حوی و عرض او ال ی عبد الله عليه السلام و صح او ال تو این صح او اعام فران نمی رو قال انندهقراعتتهی ازطرالله ها الله مثل الله این صحح این اینجا است و که من این حال زنره صح او به چی بر امام فرمودن صحیح یا قرء و صححه او. خودش قرء و علی الله و با قرائتش به امام تصحیح کرد مثلا سوال کردی صحیح این صحیح اینو ما الان در این عبارت اگر صححه او به امام برگرده این اولین تعبیر ما اگر صححه او به خود طلبی برگرده این اولین تعبیر ما نیست تعبیری که داشته باشیم صحیحون فعملوا به یا صحیحون ینبغی ان یعملوا به منحصرن از امام عسکری سلام الله آیا از اینها هم در میاد حجیت خب به تایب اولا در نمیاد نه حجیت تعبدی از اینها در میاد نه حجیت اوغلای و نه حتی میشیم بگیم که از اینها در میاد عدم حجیت اینها کتابهای معگلی بود اولا اینها موغدی هستند اون کتابها هیچ کدومش فعلا در اختیار ما نیست مخصوصا با اون صورتش بله در باب کتاب سلیم ابن خیز امام فرمودن صدق سلیم رحمت الله علیه این صدر سلیم این با حجیت تعبدی ما من شعنه می سازه صدق لیکن این حجیت نیست صدق یعنی واقع گراییه ما از کردیم حجیت در مقابل واقعه و لذا الان اگر ما بخوایم در احکام شریعت به واقع در مسئله حجیت نمازین راحت با مشکل روبرو نشیم یک مقداری بالاخره با دست دامن حجیت بزنیم البته فرق ما با اون که شاید نزدیک 80 درصد حجیت اون رو سعی کنیم با واقعه گرایی حل بکنیم به هر حال این صدر چون کتاب کتاب تاریخه راضی به حجیت یک اصطلاح خاص در بابه قوانینه نداره بله شأن و اثریه رساله صدقه شأن و اثریه رساله، این در واقع عباراتون اخرى از این است که امام میفرمایند این مطالب مطابق با واقع است. کاشف ناقصی نیست که امام بخواد کاملش بکنه. این از اتم انواع کشف، کلام امام معصوم دیگه. امام معصوم این مطالب درسته. این مطالب درسته. دیگه توش تصور حجیت نیست. پس این مجموعه ای که در کتب آمده مزافم به اینکه اونا خودش خیلی ضعیفه همون خود مطلب مزافم به که خود اون نسخه‌ای که امام سجال ترجمه کردن دقیقاً الان دست ما نیست این کتاب هایی که ائمه علیه فرمودن هیچ کدومشونو الان در دست ما نیست و قطعاً این مجموعه هم نمیتونه به فقه ما وافی باشه استفاده حجیت به معنای اصطلاح از, از اینها هم چنانکه دادیم روشن شد واضح نیست این راجبه مجموعه این روایت تا اینجا تا دیگری از روایات از شماره سی و چار توارفیست که ایمه علیه مسلم به کتاب معینی ارجاع نداده این خیلی به درم میخورد این دیگه انصافا به درده حدیت میخورده اولش در اصول کافی اوائل محمد بن یحیاب به اصنادی یعنی ان احمد ابن عمر الحلان. حلال ظاهر از کل مصابقه این, این شغل چند جور خونده میشه خلال خونده میشه جلال خونده میشه حلال خونده میشه ایشون احمد نامر ظاهرن حلال بوده حل همینه ارده دهن و سمسم به صدا. که شیره جنبش میگن روغن کنجه روغن سمسم کنجه این رو ما به زوان فارسی ارده میگیم الان عربان راشی میگن این حل به فتحه حل اون روغن شیره به از روغن جلالم از جل که پوست پوست حیوانات میفروس یا حیوانات پوست میکن بود خلالم که از خلوانه سرکه هست حسن قال قلطن عبدالحسن رضا علیه السلام از رجل من اصحابنا یعطین کتاب و لا یقول اروهی اروهی انه یا جوزه بیان عربیه و ان قال ازا علم تن کتاب الله فر بگم انصافه این دیگه به در حجی به خبر میخوره ولی که این ناظر یک بحث بسیار معروفی بوده در اون زمان استلاحا در طرق تحمل حدیث یکی از طرق تحمل حدیث که ضعیف حسابش میکردن نه ضعیف ببینه هفت بوده از ضعف طرق به نحوه وجاده است این قبل از وجاده است. این استلاحا مناوله بوده اصطلاح مناوله اینه مثلا کسی کتابی نوشته به شما میده بحثتر این بوده که اگر کتابی رو مناقلتا روچند شد به شما دادن میتونید بگید انفلان خوب دقت بکنید اینا ما چون گفتیم هدف ما از رواز خوندن جب, جب تاریخی که زمان در حدیث بود در مورد تحدیث حالا الفاظی که هست من نمیخواهم جد در خلال شد متعرض بشم گاهی اوقات بحثتر این بوده که مثلا تعبیر بکنیم به حد بسنی یا تحبیر بکنیم به اخبرانی یا تغییر بکنیم به انبعنی حالا بین این ستا فهم میکنه نه اینش را یک دو حالا طرق تحمل حدیث از قراعت بود و سماع بود و الاخریهی سماع بود و, و قراعت بوده و قراعت علیه بوده تا مناوده و بعد از اون هم وجاده هفته تاریخ بوده بحثتر این بوده که آیا ما وقتی به نحوه وجاده بود میتونیم به نحوه حد بگیم؟ که گفتیم یکی از مشکلات که الان در حدیث ما وجود داره و ده از بزرگان قدیم به اون تنبه پیدا کردن همینه یک مشکلش اینه فرض کنیم این به احتمال بسیار قدیم سحلب نزیاد که از قوم رفته به کوفه داره تهمال حدیث احتمال داره مقدار از این کتومی رو که نحل میکنه به نحو رجاده بوده و این بحث به این سنت هم بوده احساس به شیعه نداشته این رو ما مبانی رو ضعف اجازه نمی کنه در طرف اون دخش بکنه میگن آقا این آقا مبناش اینه که در صورت وجاده یه حد حالا دلیلشی و بحث دیگریه میدونه این کتاب مال فرس که مثلا فلان آقاست رفته از بازار به اشترای اشترای توامنسور به قول محمد ابن گفت این نماهی کتب اشترای هر هرچی گفتم نقل کدم همهش وجاده هست میگن آخر ببینید این مبنا بین مشهور علماء یعنی مثلا بین علمای اهل سنت نزدیک نرده 8 تقریبا نرده 8 که این درست نیست نه به سیغه حددسنی درسته و اخبرانی و انبهلی از اخو او حتی به سیغه انه هم درست نیست مثلا بگه ان فلان ببینید سه سه تجه چهارده تقریب رو بردید اخبرنی، انبعنی و ان،, ان، فلان که استلاحاً انهانه میگن اونا میگفتن اگر به نحوه انهانه هم کرد انهانه مصابقه با اتصاله یا به نحوه قراعات بشه، یا به نحوه سماه باشه یا لاعقل به نحوه اجازه باشه اجازه لبود اما اگر یا به نحوه رسیت باشه کتب علیه او سابقه کتبه این رسیت رسال کتابه به نحر اون باشه. اما اگر به نحر مناوله بود یا از اون بدتر به نحر رجاده بود در مشکل چیه؟ اگر به نحر رجاده بود شما حق نداریم بگینه همه فلا همه. و من سابقه هم توضیحاتش ارز کردم بالای نرد و این بحث تو کتب احل سنت مفصل اما تو کتب ما مفصل نهماده. این بحث در کتب قدمای ما اما در هر مفصل در کتب حدیث اقوال آل الهلال آل الهلال اینطور اسبورده چون مصالح ادله سنگینی از علماشون 95 درصد اون فهرست در اسما که نگاه می‌بنم من اجمالاً به شما عرض کردم چون نمی‌خوام واژه فواصل درایه بشن 95 درصد درستاد، 96 درصدشون میگن لایق نیست انا انا لایق نیست و توضیحی هم عرض کردید ولو ما در زبان فارسی هم ان و هم من رو از معنا می‌کنیم در زبان فارسی دا این در لغت عربی فهمت میکنن نمیگن علی ابن ابراهیم من عبیر نمیگن ان عبید. اصلا میگن سر این که تعبیر به انعنه کردن و کلمه ان رو به کار بردن چون ان به معنای مجاوزه است اگر تو مجاوزه کتب مجاوزه این معناست یعنی در نظر میگیرن یک شیعی رو یک شیعی دیگری یعنی از اون رد بشه تجاوز بکنه. این در نظر گرفتن اما اگر مبدعش اون باشه اون رو من میگن مبدعیت و نشویه سهیه این باشه که اصل من برای نشویه است. این منشأ، اون معانی دیگه تصویر ابتدا و غیر ابتدا و تطبیقه. حالا به هر حال وازه بحث باقیه نیم مخوام اینجا باشم اما معنای ام مجاوزه است معنای من نشویهت و ابتدا و غلاله نشویهت صحیح جامعه بین مراتب ابتدا و ابتدا به معنای منشئیت. اینا وقتی میگن علی ابن ابراهیم نه که انما در نظر گرفتن این کلام از پدرش رفت شده به او رسیده این نکتره این مجاوزه چون گرم این تو انه قوز چطوری میگه از کمان تیر زدن این از رو ما ان رو از معنا کنیم، چون تیر از کمان رفت شده لذا از کلم که دارن بالای نود و در علمای اهل سنه تصریح کردم در صورت رجاده انعنه نمیشه به کار بود چون از او رد نشده نمیتونه بگه انل اما ما داریم که علمای خود ما اده یا کدام احتمالا مشکل سهل ابن زیادم توضیح دادیم ما در اولین بار که احتمالا مرحومه اشعری که میگه شهده علیه بلکست کذب نیست یعنی سا سا می گفته. بقیه که البته این صاحب صادرو میگفته خیلی بعیده مثلا 900 مورد راغل کلی این احادیث این شخص داره صاد صاد دروغ میگه کلینی را این نیست کذب در اینجا کذب مطلعه یعنی وقتی سهل بن زیاد میگه ان این چون مرحوم احمد اشعری به کوفه رفته بود سهل همستون کوفه رفته احمد اشعری میخواست با این سهل بن نرفته پیش وشا. این کتاب از بازار گرفته کتاب ثابته بحث نیست اما این حق نداشته بگه انل و شا باید بگه وجد تو که کتاب باید تعبیر وجد تو رو به کار میبرد حق نداشته بگه انل و شا این توضیحاتش دارم من اجمال ارز میکنم سابقا هم میگه دیکی دوباره ارز کرد توضیح هم میخواد که اینجا جا شید ما معتقدیم اعبادت نجور چیه مرادش اینه آقایون حتی عباسی نجاشی بلکه کذابیت سهل افنی زیاده فهمیده. به نظر ما ایشون کذاب نیست ایشون مبنای حدیثیش اینه این مبنای حدیثی سنیان دارن اخصاص رو ما نداره آره اگه من یه وقتی فرصت شد اصلا متون اهل سندم همین مناوده اصلا بدتر از مناوده در کتاب از کفای خفی بغداد داره که یه روز دو تا حقیق درسه صوفیان صوری بودیم که سیامد یه مجموع برقی دست گفت یه احادیث توست گفت بله از تو رو هست کنم گفت بله رفت به همین مقدان این شاده توضیح داشت اینجا به نحوه مناغله است این حدیث میگه سوال از حدیث تند روی صعیفه صعیف سعی نیست ولی یک نقطه ای را من تو حدیث دوم ارز میکنم خیلی دقت بکنید. ولی تو اصول کافی این حدیث ها آمده نسبت دادن این در به این محلی خیلی سنگینه چون تو علوم حدیث تو این مشکل دارن. این تو این علوم حدیث رو این قسمت های حدیثی مشکل داره. میگه الرجل من اصحاب نایو این کتاب بلا یک قول ایرده ای به من نمیده فقط مناوله است دقت بکنید. و یا يقول ارغ يعني یعنی. یع... ولا يقول ارغ يعني یعنی. نمیگه اجازه من نده فقط مناقله کرده یه اجحل يجوز ان ارويه و انهو یعنی بگم انهو کلمه انهو میشن به کار بکنم. با مناقله حالا این ان ارویه و انهو ممکن است دو جور معنا بشه بگم هدفم این فلان با مناقله اون دیگه درجه شدید بشه دو دقیقه فرمولیم او انهو انهو یعنی بگم ان فلان با این که از او قراعت نشده با این که از او اجازه نشده ببینیم ولا یک قول اروهی انه نه قرائت شده نه سما بوده یعنی سماع تویهو یا قرار کتاب نه من قرار تواله و نه او به من اجازه داده تعمال ببینم این خیلی بهتر بکنی چون ممکن است مثلا علما اهل سنت مثلا ام ام جنای این یعنی چه در از اجازه اینطوری مطلبی رو چطور انسان بگه انی با اینکه لم یسمع و لم یقر علی فلم یجزل لا به مجرد مناوله چطور بگیم انه یا حد حدثنی بگیم در از چی میخوام بگم یا حد حدثنی بگیم یا اخبرنی بگیم یا لاغر انه بگیم میگه حد امام علیه السلام میفرماید اذا علم تند کتاب الله فر بگه هم حدیث تند شوشنید الان هم انصافا بینا بین الله نیم تویم به امام معصوم چیم مطلی رو اجازه بدیم اما اگر کتاب حدیث رو باشه اصل روایت حدیث, حدیث حتی تحدیث و یا معنی نقل کردن در صورت مناوله خود این یک طریق زعیبیه مناوله طریق زعیبیه البته از اف از وجاده نیست چون کتاب هر به من داده از اف از مناوله وجاده است یعنی وجد تول کتاب حالا این یک حدیث حدیث بعدی از این مشکل تره ادتون از اصحابنا ان احمد بن محمد که ظاهرا مرغمه اشعریه ان محمد بن الحسن ابن ابی خالد شینوله من چند دفعه ارز کردن بعضی نسخمزه سمبوله، سیبوله، شینوله نمیفهمم فهمن مراده بیگه اصلا این مال لقب کی هم هست لغب جدش ابو خالده و حال محمد ابن حسن ایشون از اشاعره قومه نمی شنسیم. این شخص رو مرحوم شیر فقط اسمش رو اصحاب ایشون از اصحاب از زا ایشون اصحاب حضرت زاره حضرت موسد نجرفر هم حدیث داشته باشه اما مسلمن جز اصحاب حدود جواد هم هست که شیخ ننوشته با نمیدونیم چرا ننوشته علایه حالا این شخص الان شناخته نیست اما نسبتن حدیث داره و جز به اشعری های قومه مثلا درست مکه مدینه یا مهج کتاب ثابت نیست کتاب داشته باشه توی فهارس اصحاب اسمی نیامده اما مجموعاً بدنی سلوز 15-20-25 داره باید داره. در مجموع کتاب عربه محمده نرحسن القومی علی اشعری اسم جدش هم نمیدونیم اصلا چون خاندان اشعری پرکیب معین دارم من اونه که اول آمدن بچه هاشون نباه هاشون اسمی درست نمیدونیم اصلاً جدش ابو خالده ابو خالده قایتاً کنی یزیده در اصطلاح معرخی و در اصطلاح رجالی ها ابو خالد کنی یزید تا اینکه جدش چند یزید بوده مثلا نخیو کنه شیعه بوده مثلا اسم یزید نبره به هر حال اینا رو ما الان نمیدونیم اطلاعات ما راجبی این شخص کمه بیشترین روایت از این شخص رو هم همین مرحوم اشعری کرده احتمالاً مثلا از ابنا عمش بوده از یه خانواده بوده از اون نقل کرده ما از اطلاع نداریم در فهارس اصحابم اجمالاً یک سه تا کتاب ما در فهرس شیخ طوسی داریم که از یکی ایش هم نجاشی توی فهرست هم اسمش داری که راوی کتاب بوده اینم داری میگه معلومات مراجبی ایشان خیلی کمه بیشتر از روایت دو سه موردن تو فهارس دیگه معلومات زیاده 20-25 موردن شاید در مجموعه روایات باشه بله مؤذم این روایت رو احمد بن محمد بن ایسای اشعری نارده ده که فوق الاده بزرگواره و خودش هم اشعریه این طرف هم اشعریه شاید مثلا یک شاهدی اجمالا باشه اما توصیفی الان ایشان نداره قال قلت لع بی علیه السلام قلت فدار ان مشایخنا رو عن بی جعفر و بی عبدالله علیه السلام علیهما السلام و كانت طریقتهم شدیداتن فكتبم کتبهم فلم يرد و ظهیرترش یارد به صیغه مجهول باشه باب تخییب بنهو روایت از اینها نشوده نه سماع شده نه شده نه اجازه شده حتی مناقله هم نشوده فلما ما ماتو صارت الكتب الینا یعنی رجاده سر السلامون نشه بنحو وجاده سر قال علیه السلام حد صوبها فانه حق خیلی سن یعنی به انصاف این حد سو چه به سیغه تحلیس باشه مثلا اگه حدس زنید ای بلا این یک مشکل بزرگه حتی به سیغه معنه باشه یک تصریح تصریح که اگر به نحره جاده بود حد سوبه ها فرنها حق بون. شما میتونید اینها رو این منشأ مثل سهل ابن زیاد و اینها منشأش رو در واقع اینها بوده تصور میتونید ما الان میگیم آقایون نسبت نمیدیم به ما معصوم دقت می‌فرمایید خیلی مشکل الان نشدیم به ما معصوم که کتاب رو به نحوه وجا ده بگیم عن حالا راه ده عقل نشه حالا تعبیر حدسوس اگر حدسوس حد رو خیلی مولانوبتی بیان بکنید یعنی بگید حدس اینه که خیلی مصیبت کتابی را از زیر زمین در آوردی مؤلف چند مدت قبل فوت کرده بگیم حدس این این که دیگه خیلی زیاده مصیبت این که دیگه خیلی زیاده. اگه بخواد حال رو به معنای بگیم حدفنی. اگر حدفنی هم نگیم این به باید الان در دنیای اهل سنت خیلی نهزه بزرگی بر امامی از ها دقت بکنید. چون در کافی هم آمده این تصریح میکنه که شما وجادیه اونم با چیزی که اصلا درکش نگردید. 50 سال قبل شاید شما میتونید حدیثی که به نحوه وجاده از حد از شخص میه لاعقل به صورت معنان نقل بکنه حد درقلش نگه ان کلام و این ارز کردیم احتمالا مبنای مثل پس که مثلا محمد ابن سنا مثل سهل ابن زیاد حالا یه حالی ما اون چواده سرک امامی احتمالا مبنای اونها بوده که خود امام حالا این ها نبیدن نقالی بکن که این رواسته نمیشه قبول کرد انصافا با این در اصول کافی امام امده منحسن در ر من حصر ایشو نعر این روایت فی غایت صعوبت الاشکار خوبه سلام خب کتب نمیشه کی بادی ام فلان اگرا فلان میگم در اصل ابتدا حد ها ظاهرش اینه کی شما بچین از اینا حدیث نعر بکن چون حفه بیرهای حدیثشون به نه وجه تو چرا؟ وحنیشه به نه وجه تو وجد تو یه و بگید مثلا این آهایی که ست سال قبله وجه تو کتاب مثل مقروم سیرون تاووز غالبا در کتاب‌های خودش اوصاب رو میگه میگه این رو از کتاب فضال نسخی تاریخی سال فلانه نقضی میکنن جوری باید بگید انسان بلا؟ میگن مرحوم سال وسائلیشون چیز نبروند سال وسائل فرموده این روایت در جاییست که اسناد اون کتب به اصحابش قفیه و به تعبیر دیگه اینا کتب معینی هم. مطلق نیست حدیسوبه ها اینا کتب معینی هم و از اون کتاب محمد المسلم کتاب یه چند تا کتاب معین مراده حدیسوبه ها رو با کلمه بهابی این معنی لیکن خب من سابقه هم حرص کردم این دوته روایت یه مقدار شاهد میشه برای اده از اخواری و هم خود صاحب وسائل خود صاحب وسائل اعتقادش اینه که از مجموعه روایات در میاریم حجیت روایتی که در کتب مشهوره است حالا اگر این معنا ثابت بشه اگر این معنا ثابت بشه بیرین معنا چیه؟ حجیت روایاتی که در کتب مشهور است، این اگر باشه به درد حجیت تعبدی خبر میخوره چون تا الان مخاطیم این به درد حجیت تعبدی خبر و منشه تعبد کلام ما معصوم معیار چون گزیم حجیت تعبدی معیار میخواهد معیار وجود خبر سل کتب مشهوره اگر این روایات خبول بکنیم و این جور معمو بکنیم نه به کتب معینه بزنیم این روایات ممکنه ازش این مبنا رو ما در بیاریم و اون چون گفتیم که مفصل گفتیم حجیت تعبدی حجیت و قلعه عدم حجیت از این روایات حجیت تعبدی در میاد منشعش هم تعبد در فقه شیعه نه در دنیای اسلام مثلا آیه نبه در دنیای اسلام اما منشهش میشه شیعی در فقه شیعه اشکال نداره چون امام معصوم اجازه دادن مئیارش هم چیه؟ مئیارش وجود روایت در کتاب مشهوره این همون مئیار سا و اخباری ها هر روایتی که در کتاب مشهوره شیعه باشه حجیت داره میگه کتاب امکانت موجوده بعد حد شبهه ها اینه ها یعنی کتاب هایی که معروف بودن مشهور بودن یا اسنادش به اصحابش مسلم بوده صلی الله علیه